بسم الله الرحمن الرحیم داستانی که در این لوح فشرده در قالب نمایش رادیویی تقدیم شما مؤمنان جویای حق و حقیقت می گردد بر اساس کتاب شبهای پیشاور مشروح مناظرات عالم توانای شیعه با بزرگان اهل سنت است که در سال 1345 هجری قمری در شهر پیشاور پاکستان برگزار گردید این کتاب یکی از جامعترین و در عین حال شیرینترین کتاب‌هایی است که در این زمینه نوشته شده‌اند و اما شرح ماجران مرحوم سید محمد سلطان الباعزین شیرازی فرزند سید علی اکبر اشرف الباعزین از دانشمندان و خطبای مشهور شیعه بود نسب شریف وی از طریق امام همام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه منتهی می‌شود وی در ماه ذی القعده سال 1314 قمری در تهران متولد شد و در سال 1326 همراه پدر بزرگوارش آزم عتبات عالیات کردید و از محضر مرحوم حضرات مرندی و شهرستانی کسب فیض نمود وی در سال 1328 قمری به ایران مراجعه کرد ایشان در طی عمر با برکت خود مسافلت های بسیاری به عراق، سوریه، فلسطین، اردن، مصر و هندوستان نمود. او در طول این سفرها با توایف بسیاری مانند یهودیان، هندوها و بهاییها مناظراتی داشته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که مرحوم سلطان الوائزین در رویال اول سال 1345 هجری قمری از طریق هندوستان به قصد زیارت امام هشتم امام رضا علیه السلام آزم ایران می شود. بر سر راه خود هنگامی که به کراچی و بنبای می‌رسد، جراید بر های محلی ورود ایشان را گزارش می‌دهند. دوستان و آشنایان ایشان را به شهرهای دهلی، اگره، لاهور، کشمیر و کویت دعوت می‌کنند. در طی حضور در دهلی، مناظری با علمای هندو و براهمه در حضور گاندی برگزار می‌شود که در این مجلس مرحوم سلطان الواعظین با بهره‌گیری از امداد الهی حقانیت دین مبین اسلام را ثابت می‌نماید. آنگاه به دعوت انجمن اصناعشریه به ریاست سید علی شاه نقبی مدیر هفتنامه دور نجف آزم شهر سیالکوت می شود و در این شهر با استقبال باشکوهی مواجه می گردد. در چهارده رجب 1345 قمری با دعوت جناب محمد خان به پیشاور که یکی از شهرهای مرزی پنجاب است آزم می شود. در پیشاور در حسینیه مرحوم آدل بیک رسالدار منبر می رود که ادهه بسیاری از اهل سنت و شیعه مقیم پیشاور در این جلسات شرکت می کنند. در یکی از روزها پس از اتمام منبر به ایشان خبر میدهند که دو نفر از بزرگان و علمای اهل سنت کابل افغانستان به نامهای حافظ محمد رشید و شیخ عبدالسلام تقاضای ملاقات با ایشان به منظور انجام مناظرات دینی را دارند. مرحوم سلطان الواعظین از این پیشنهاد استقبال می‌نمایند و جلسات مناظره در منزل میرزا یعقوب علی خان که از رجال مهم پیشاور است تشکیل می شود و ده شب به درازا می‌کشد. این جلسات مناظره در حضور حدود دویست نفر از رجال و بزرگان شیعه و اهل سنت و خبرنگاران چهار روزنامه و مجله محلی که گفتگوهای طرفین را نوشته و منتشر می‌کردند برگزار شد. حالا بشنوید داستان این مناظره را شب اول و دوم در ابتدا جناب حافظ محمد رشید گفتگورا آغاز کردند حضرت آقا تشریف فرمایی شما به شهر پیشآور و سخنرانی های حضرت عالی اختلافات زیادی رو بین مردم ایجاد کرده به همین خاطر من و جناب مستطاب شیخ عبدالسلام بر حسب وظیفه دینیمان خدمت رسیدیم تا به صورت اساسی وارد بحث علمی شده و مانع این اختلافات و الغای شبهات بشیم. بنده با این پیشنهاد بسیار موافقم اما مشروط به اون که در بحث ها از مغالطه و جدل و اعمال تعصبات غیر منطقی اجتناب شود. بسیار خوب. من هم یک شرط دیگه اضافه می کنم و اون این که دلایلی که مطرح میشه فقط از قرآن باشه و بس. این شرط عملی نیست. زیرا چاره نداریم جز این که برای فهم بیشتر مطالب قرآنی به احادیث معتبر مراجعه کنیم. پس فقط به احادیث مورد قبول طرف این استناد بشه. بله حتما. شرط دیگه اون که در بحث موازین اخلاقی رعایت بشه و به هیچ کس توحینی نشه. کلام مثبتی فرمودید برای کسی چون من که افتخار سیادت و انتصاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارم سزاوار نیست که برخلاف روش و کردار جد بزرگوارم که مظهر کامل اخلاق نیک بوده عمل کنم ببخشید به چه دلیل شما خودتون و منتسب به پیامبر صلی الله میدونید نصب ما از طریق حضرت صدیقه کبرا فاطمی زهرا سلام الله به حضرت رسول صلی الله علیه, علیه و سلم میرسد از شما که عالم هستین تعجب میکنم آیا نمیدونین نسل انسان از طرف پسر ادامه پیدا میکنه و نه از طرف دختر؟ اینگونه که میفرمایید نیست. در قرآن مجید در آیه 61 سوره عالی امران که به آیه مباهله معروف هست از امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام عنوان پسران رسول خدا یاد شد. علاوه بر این علمای خودتون از خلیفه دوم نقل کردند که رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند هر حسب و نسبی جز حسب و نسب من در روز قیامت قطع می شود و ریشه و اساس هر دخترزادی از پدر وی باشد غیر از اولاد فاطمه که من پدرشان هستم در این هنگام آقایان اهل سنت جهت اقامه نماز عشا جلسه را ترک میکنند پس از ادای نماز یکی از تجار سرشناس شهر به نام جناب نواب عبدالقیوم خان سوالی مطرح میکنن اجازه میدید در فرصتی که آقایان چای میخورند خارج از موضوع سوالی بپرسم خواهش میکنم بفرمید چرا شما شیعان بر خلاف سنت رسول خدا نماز ظهر را با عصر و نماز مغرب را با عشا جمع میکنید این بر خلاف سنت نیست عضرت رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم هم گاهی جمع و گاهی به تفریق این نمازها را ادا می‌فرمودند جناب آقای حافظ آیا همینطور است که میفرمایند؟ نه خیر آن حضرت برای اینکه امت در سختی و مشقت نباشند فقط در سفر و مواقعه عذر این گونه عمل می‌فرمودند من اشتباه نمی‌کنم این مطلب را از کتاب‌های خودتان که ثبت شده عرض کردم در کتاب صحیح مسلم از ابن عباس نقل شده که رسول خدا نماز ظهر و عصر و مغرب و را بدون خوف و در غیر سفر جمعاً ادا می بود. البته این اختلافات جزئیست، بهتر است به مسائل اصولی بپردازیم. مطلبی که به نظرم عجیب میاد، اینه که چرا شخص شریفی مثل شما از راه و روش جد بزرگوارتان منحرف شده اید و راه و روش سیاسی ایرانیان آتش پرست را در پیش گرفته اید؟ متوجه منظورتان نمی‌شوم مگر راه و روش ایرانیان چیست که من پیرو آن میدانیم که پس از فوت هر یک از پیامبران الهی کتاب‌های ایشان مورد دستبرد دشمنان قرار می‌گرفت اما در مورد قرآن به دلیل حفظ الهی چنین اتفاقی رخ نداد اما برخی از مردم یهودی مانند عبدالله ابن سبا و کعب الاحبار با ارائه عقاید باطل در قالب احادیث نبوی باعث انحراف شدند بعضی از این احادیث به روایاتی که دلالت بر خلافت بلافصل علی کرم الله و نادرست بودن خلافت خلفای راشدین دارد، مربوط می شود. این احادیث موجب تشیل حزب سیاسی شیعه گردید که در اثر گسترش فعالیت همین حزب، خلیفه عثمان به قتل رسید. ایرانیان هم که دنبال بهانه بودند تا علیه اعراب قیام نمایند، این حزب را به رسمیت شناخته و مذهب رسمی خود قرار دادند و در یک کلام بگویم که شیعه ای از یهود است از شما بعید بود که چنین مطالب نادرستی را در چنین مجلس مهمی بیان کنید این گفته‌های شما مشتی مطالب بیپایه و اساس هست اگر اجازه بفرمایید برای روشن شدن مطلب با دلایلی متقن پاسختان را بدم بنده سراپا گوش هستم حقاظای من این است که در گفتارتان دقیق باشید تا پس از شنیدن جواب خجالت زده نشوید. اولا شیعه یک مذهب است، نه یک حزب. آن هم مذهبی که در زمان رسول مکرم اسلام پای ریزی شد. سانیان، طبق اخبار معتبری که در کتابهای تفسیری شما نیز وجود دارد، اصطلاح شیعه در زمان حیات رسول خدا، به دستور آن حضرت به پیروان علی ابن عبی طالب علیه السلام اعتار شد کجا چنین خبری بوده که ما ندیده ایم؟ این که شما ندیده ای دیگر تقصیر ما نیست ما دیده ایم و حق را یافتیم بدانیم که خداوند متعال به کتمان کنندگان حق و عذاب داده است ما هم اگر حق را پیدا کنیم روی از آن بر نمی گردانیم. شما به حق چیست تا روشن در کتابهای خودتان از ابن عباس نقل شده که وقتی آیی شریفه ان ای اللذین آمنو و عملوا الصالحات که هم خیر البریه نازل شد رسول بزرگوار اسلام رو به امیر مؤمنان علی علیه السلام کرد و فرمود یا علی تو و شیعیانت خیر البریه هستید در روز قیامت شما از خدا راضی خواهید بود و خدا هم از شما راضی دشمنان تو در حالی که دستهایشان به گردن بسته شده است، وارد صحرای محشر شوند. گذشتی از این روایت مگر شما عمل اصحاب پیامبر را حجت و دلیل نمیدانید. چرا؟ در حدیث آمده به راستی اصحاب من مانند ستارگان هستند. به هر کدام از آنها اقتدا کنید، هدایت می‌شوید. بسیار خوب. آیا در کتاب خودتان نخونده که ابوزر و سلمان و مقداد و امار را با لفظ شیعه میخواندند؟ چون در روز صقیفه از بیعت با ابو خودداری کردند. آیا ابوزر و سلمان در شمار اصحاب و به قول شما ستارگان هدایت نیستند؟ آیا در کتابهای خودتان از رسول خدا روایت نشده است که خدا مرا به دوستی علی و ابوزر و مقداد و سلمان دستور داده است؟ مثل اینکه شما تنها همان چند نفری که در صف بلوا را انداختن را صحابه می‌دانید چطور می‌فرمایید که ایرانیان پیرو اهل ابن عبی طالب هستند در حالی که آنها علی را خدا می‌دانند باز هم که بدون تحقیق حرف زدید شما با این حرفتان تمام شیعیان ایرانی را علی پرست می خانید و آنها را مشرک و باجبل غتر می‌شمارید ما علی امیرالمومنین علیه السلام را بنده صالح پروردگار و خلیفه منسوب رسول خدا می‌دانیم و از کسانی که آن حضرت را خدا می‌دارند بیزاریم امام ششم ما می‌فرماید لعنت خدا بر عبدالله ابن سبا که قائل به الوهیت امیرالمومنان علی علیه السلام گردید به خدا سوگند آن حضرت بنده مطیع خدا بود وای در کسانی که به ما چیزهایی را نسبت می‌دهند که ما در حق خودمان نمی‌گوییم جناب آقای حافظ خوب است همانطور طور که ما کتاب معتبر شما را میخوانیم شما هم کتاب معتبر ما را بخوانید تا افترا به نزنید. نسیحت های شما را میپذیرم. اما خواهش میکنم اجازه بفرمایید تذکری خدمتتان ارعرض کنم. بسیار ممنون میم بفرمایید. شما با اینکه می گویید ما درباره امامان خود قلوف نمی نمیکنیم، ولی در حرفهایتان هایتان مکررن غل می کنید. هر باری که نام امامانتان را میبرید عوض آنکه بگویید رضی الله و عنهم می‌فرمایید الله علیه و علی و سلم و این خلاف نص سریح قرآن است که می‌فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین عليهم صلوا علیهم وسلموا تسلیما اولا در این آیه سلام و صلوات بر دیگران من نشده است ثانیا در جای دیگر داریم سلامون علی آل یاسین که یاسین نام رسول خداست و آل یاسین آل پیامبر هستند. شما می خواهید با سحر بیان سخنانتان را ثابت کنید. چه کسی این آیه را به این صورت تفسیر کرده است؟ خواهش می کنم اینقدر قاطع حرف نزنید تا پس از شنیدن جواب خجل نشوید. ابن هجر به نقل از فخر رازی که همگی شما او را قبول دارید می گوید، اهل بیت پیامبر در پنج چیز با پیامبر مشترکند. اول در سلام. زیرا در قرآن همون گونه که بر پیامبر اسلام سلام فرستاده شده، بر آل اونی سلام فرستاده شده است. دوم در سلوات بر پیامبر در تشهد نماز. سوم در تهارت به دلیل آیه تطهیر. چهارم در تحریم صدقه و پنجم در واجب بودن محبت پیامبر. علاوه بر این حدیثی از رسول خدا وارد شده است که می‌فرماید سلوات بریده و ناتمام بر من نفرستید عرض شد سلوات ناتمام چیست فرمودند این که بگویید اللهم صل علی محمد و سپس آل محمد را نگوید پس تصدیق کنید که صلوات بر آن پیامبر نه تنها بدعت نیست بلکه عبادت است در این هنگام چون نیمی از شب گذشته بود و آثار خستگی در چهره هزار دیده میشد جناب واعز مجلس را ختم نموده و قرار گذاشتند که فردا شب مجلس زودتر شروع گردد بعد از صرف چای و پذیرایی همه متفرق شدند بعد بنصلی علی احمد خیر و علی الساقی علی الحرف امیر المؤمنینا على فاطمة الزهر رائع من أكربين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظب الموسى والرضا فضلا ودينا وتقي الخشع الباصب بالجود يمينا وعلى الهد الذي أشرفك الشمس جبينا ربنا صلِّ صلِّ صلِّه على أحمد خير القصي.